سوریه <مولك> <سوري مولك> <سوري مولك> <أعوذ بالله> من الشيطان الرجيم. بسم الله تبارک الذی بیده الملک و هو على کلی به نام الله که بخشاگانده و بارحمت است با برکت است کسی که فرمان مطلق به دست او است و او بر هر کاری تواناست همان کسی که زندگی و مرگ را خلق کرد تا همه شما را بیازماید و مشخص کند کدامتان عمل کرده بهتری دارد بدانید که او قدرتمند و آمرزنده است کسی که هفت آسمان را بر یک دیگر خلق کرد آنچنان که در آفرینش خدای رحمان هیچ عیب و بینزمی نمی بینی. پس بار دیگر بنگر آیا خلالی می‌بینی؟ سپس بار دیگر بنگر اما سرانجام نگاه خسته و درماندت دوباره به سویت باز میگردد زیرا هیچ خلال و بینظمی نیافته است ما آسمان دنیا را با چراغهایی زینت دادیم و آن را وسیله دفع شیاطین قرار دادیم حالان که برایشان آتش سوزان را تدارک دیده ای. و برای کسانی که به پروردگارشان کافر شدند جهنم است و چه بد سرنوشتی است این جهنم هنگامی که در جهنم افکنده شدند صدای رومنگیزش را بشنوند در حالی که پیوسته می نزدیک است که از خشم پاره پاره شدند و هنگامی که گروهی در آن افکند شوند، نگهبانان جهنم با آنها گوگند به آنها گویند آیا دهنده ای به سراغتان نیامد؟ گویند آری هشدار دهنده به سراغمان آمد اما ما او را تکسیب کردیم و گفتیم خدا هیچ چیز نازل نکرده است و شما در گمراهی بزرگی هستید. و گویند اگر حقایق را میشنیدیم و عقل من را به کار می اکنون اهل آتش نبودی. و سرانجام به گناهانشان اعتراف کردند پس نفرین بر اهل آتش کسانی که در نهان از پروردگارشان خوف دارند برایشان مغفرت و پاداشی بزرگ است چه سخنان خود را پنهان کنید و چه آشکارش سازی تفاوتی نمی زیرا او به آن که در سینه‌ها ها آگاه است آیا کسی که آفرینش را به وجود آورده آگاه نیست؟ او نکت سنج و است او کسی است که زمین را رام شما کرده است پس در فراخنای آن رهسپار شوید و از رزق خدا بخورید و بدانید که بازگشت همتان به سوی خداست چگونه از مجازات آن که حاکم آسمان است، ایمن نشسته اید که ناگاه زمین را به لرزه درآورد و همه گیتان را در آن فرو برد؟ یا چگونه از مجازات حاکم آسمان ایمن نشسته اید که ناگاه توند بادی از سنگریزه بر شما فرستند؟ به زودی خواهید فهمید که بیم دادن من چگونه است قبل از آنها نیز کسانی حقایق را تکسیب کردند تصور کنید مجازات من چگونه بود آیا پرندگانی را که بالای سرشان گاه بالهای خود را می و گاه جمع میکنند ندیدند؟ جز خدای رحمان کسی آنها را در آسمان نگه نمیدارد. و او بر هر چیزی بیناست آیا آن کسان که سپاه شمایند میتوانند شما را به جای خدای رحمان یاری کنند؟ بدانید، کافران گرفتار فریبند. اگر خدایی که رزق و روزی شما را میدهد، از ارسال روزیش جلوگیری کنند چه کسی شما را تعمیل می نه، آنها در سرکشی و فرار از حق لجاجت می کند. أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَاءً مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأُكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ ما آیا کسی که سینخیز حرکت می کند به هدایت نزدیک تر است یا آنکه راستقامت بر راه راست و درست است بگو او کسی است که شما را به وجود آورد و برایتان گوش و چشم و دل نهاد و چه اندک و کم ارزش است شکر بگو او کسی است که شما را در زمین آفرید و عاقبت به سوی او محشور می‌گردید میگویند اگر راست میگویید این وعده کی تحقق می‌یابد بگو آگاهی از آن خداوند است و من فقط یک گوش‌دار دهنده آشکارم هنگامی که آن وعده الهی را از نزدیک ببینند صورتشان زشت و کریه می‌گردد و به آنها گفته شود این همان چیزی است که آن را فرا می خاندید. بگو به من خبر دهید اگر خداوند مرا و همراهان مرا هلاک کند و یا اینکه مشمول رحمت قرار دهد چه کسی اهل کف را از عذاب دردناک می رهاند. بگو او خدای رحمان است و ما به او ایمان داریم و بر او توکل می کنیم. به زودی خواهید فهمید چه کسی در گمراهی واقعی بوده است بگو به من خبر دهید اگر آبتان به عمق فرو رود چه کسی به شما آب روان خواهد داد قل راست گفت خداوند بلند مرتبه بود بل. از این کاری از مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه, علیه و علیه و سلم